من هرگز شکنجگری که بیمار روانی نباشد ندیدم از این باغلای پخته داغ با نمک میخوری؟ همینجا؟ ایستاده؟ وسط خیابان؟ پس کجا؟ در کاخ سعد آباد؟ پسرک و مادر را چه کنیم؟ برایشان میبریم یک کیسه کوچک میخوریم و میروییم اصل؟ عشق بهایی دارد که باید پرداخت هر جا بشود رایگان خورد و به رایگان خوری تفاخور کرد در میدان عاشقی این کار ممکن نیست من و تو قیمتی بسیار گران به خاطر اعتوادات من پرداختیم باز هم اگر ضرورتش پیش آمد میدهیم پس بگذرم در حیات کتابخانه ملی می شویم سکوت راه پله ها سکوت مطلق در بزرگ اتاق مطالعه سکوت کامل این سکوت خوفنگیز را دوست ندارم آهسته اینجا بیش از بیمارستان سکوت لازم است خب باشد من بیابانی و کوهی هستم خواهش می کنم. اصل فقط هفته یکی دو ساعت باشد مثل سنگ سکوت می کنم. من به سر وقت بانوی کتابدار میروم سری می دهم و کتابم را باز می‌خوام. اصل میگوید تو با او آشنایی من میگویم آهسته البته که آشنایم اصل آهسته و نک اما بسیار متظاهرانه و شاید حق بازانه به بانوی کتابدار نزدیک می شود و به زمزمه می گوید ببخشید مادام بانوی سخت محجبه که فقط گرتی صورت از مغنعه بیرون نهاده سر بر و به اصل نگاه می کند. بانوی سخت محجبه باور نمی کند که کسی در دنیا بتواند او را مادام بنامد. بفرمایید خانم، میخواستم ببینم شما کتاب انیس المحجبین یا کتابی که اسمش نزدیک به این باشد را در اینجا ندارید؟ بانوی کتابدار با لبخندی ملیح نشان میدهد که بیش از یک کتابدار به عادت هوشمند است. نام مؤلفش چیست؟ مادمازل، دقیقا نمیدانم مادام. اما فکر میکنم عبدالله ابن فاطر خراسانی باشد، نمیشه احتمالا فقط همین یک کتاب را نوشته اگر مطمئن نیستید که اسم کتاب را درست میگویید به فهرست نام مؤلف نگاه کنید مادمازل حدودا چند تا برگی را باید ورق بزنم نمیشود گفت اما می میکنم بیش از بیست هزار را این از عبدالله، فه از فاتر و خ از خراسانی اصل قبل از آن که به طرف برگدان ها برود، کیسه باغلای پخته را بالا می گیرد و به زمزمه ناشنیدنی چیزهایی می‌گوید. بانوی کتابدار رد می کند. اصل اصرار می کند. اگر چند دانه به دهانتان نگذارید داد میزنم، خیلی نرم و خوشمزه است. نمک مفصل و قدری سرکه هم دارد. دستم را رد نکنید. بانوی کتابدار مردد تسلیم می شود. دانشمندی لبخند میزند اصل کیسه را میگذارد و خیلی جدی به طرف برگدانهای عظیم چوبی میرود من به او و بانوی کتابدار نگاه میکنم بانو باغلای پخته بانمک و قدری سرکه را کاملا پسندیده است چه سکوتی در کتابخانه ها همه آدمها حتی سطحی ترینشان متفکر و امیق به نظر میرسند و شاگردان مدرسه ها که احتمالاً برای رونویسی یک مقاله برای سخنرانی سر کلاس آنجا آمدند شبیه فلاسفه و دانشمندان بزرگ میشوند خدای من این همه ابن سینا و خارزمی و بیرونی و شیخ اشراق و غزالی و ملا صدرا و میرداماد مگر ممکن است که با چنین ثروتی ملتی از حرکتی عظیم و فرهنگی باز مانده باشد فکر میکنم، انسان دردمند و سیه روزگار و معطل است و دانشمندان چه دانگی بر سر این تیر روزی ها و بیپناهی انسان عصر حاضر گذاشتند. مهم نیست، ما هرگز از چنگ آنها خلاصی نخواهیم یافت. ما فقط میتوانیم به راه راست هدایتشان کنیم و از منکرات بازشان داریم. همینقدر که برای کشتن انسانها شاکله های تازه کشف نکنند ما را کافی است. همینقدر که راههای نابود کردن طبیعت را به سرمایه پرستان نشان ندهند کافی است. همینقدر که علمشان در خدمت معدودی و به زیان بیشماری نباشد ما را بس است اما چگونه میتوان این راه دشوار را پیمود و نمود. چه وقاری؟ انگار همگیشان سرسختانه به دنبال راز بزرگ خوشبختی می گردند. از کتابها حتی به هنگام برخوردن خوردن هم صدا در نمیآید. بیچاره بیچار باید برگردیم و مقداری باغلای پخته بخریم. بانوی کتابدار دار کاملاً بی صدا، ته باغلاها را بالا میآورد. ببخشید مادام، در خی خراسانی نبود، در این عبدالله هم از فی فاطر هم چشم می پوشیم می رویم گل نسرین می چینیم اینجا از بی صدایی دارم خفه می شوم ما حتی در زندان های شاهنشاهی هم گاهی حق فریاد کشیدن داشتیم و بعد البته مفصلا هم حق کتک خوردن اینجا هم همان حقوق و مزایا را دارید مادمازل بانو لبخند می زند اصل لبخند میزند. لبخند تزهی به زندگی است. فکر نمی کردم یک کتابدار به اندازه شما شیرین باشد. من کتابداران را بسیار ابوس و تلخ تصور می کردم. تمام عمر فرو رفته در چالی سکوت. شما در خانه با بچه هایتان حرف می زنید یا آنها را هم. اگر سؤالی داشته باشند میفرستید سراغ برگدانهای عظیم خانم لطفاً آهسته حرف بزنید من هنوز ازدواج نکردم تا بچه‌ای داشته باشم آه. چرا داستانش مفصل است آهسته حرف بزنید نگاه های تند اهل علم را نگاه کنید به زودی به خشم میآیند؟ آدم‌ها به کتابخانه‌ها نمی‌آیند تا درباره این گونه مسائل گفتگو کنند یک شب شام بیایید به کلبه ما و آن داستان مفصل را برایمان تعریف کنید شما بسیار زیبا هستید و ملیح و با شخصیت حیف است که بدون همسر بمانید کسی را برایم کرده اید. عاشق را باید به هنگام عبور از خیابانی یک طرفه پیدا کرد خیابانی بی برگشت. بانوی بسیار مجبه لبخند میزند. لطفا حرف بزنید. تو به او شماره تلفن و نشانی می دهی. منتظرتان میمانیم. من و همسرم. همسرم همان پسرک است که گردم کشیده و دارد ما را نگاه می کند. شاعر است. نقاش است. خطات هم هست از زیارتتان خوشحال خواهیم شد. شما آدمهای خطرناکی هستید داد میزند اما میآیم نمیترسم عشق خطرناک است نه آشق. یادتان باشد شوهرم میگوید بنویسید چه میگوید با این سر و صدایی که شما به راه انداخته اید، اینجا به زودی شورش میشود روی این کاغذ بنویسید و بروید لطفا اصل مینویسد شما خودتان را گرفتار ممنوعیت های غیر موجه کرده اید. عشق، شکستن و پاره کردن حریم ممنوعیت های ناموجه است. عشق اوج آزادی فردی است برای آن کس که خواهان شریفترین آزادی هاست. عشق نوع عمیق و متعالی اخلاق است که به جنگ با شبه اخلاق و اخلاقیات بازاری می‌رود. اولین هدیه اصل و همسرش برای بانو کتاب دار. خدا حافظ مادام میرویم دستهای تو تراوت سبلان را دارد و تا ابد خواهد داشت. آبروی مرا با این بازیهایت بردی دختر. اسمان کتاب را از کجا پیدا کردی؟ از چهره خدان بانو الهام گرفتم. ماه بود، ماه قاب گرفته، واقعا که شیرین کاشتی با آن باغلای پخته تارف کردند اما گیل مرد کوچک اندام رؤیانویس تمام عمر که نمیشود دوشنبهها با یک کیسه باغلای پخته نمک وارد یک کتاب رسمی شد می شود؟ نه گاهی هم با لبوی داغ، گاهی هم با کشمش و بادام زمینی گاهی هم با یک کاسه آش رشته گاهی هم آه سوالان با سیب زمینی های برشته یک طرف سوخته غرق نمک از اینجور تنقلات که کم نیست اما همه کتابدارها که قدرت شوخ طبعی محبانه را ندارند دارند امتحان می کنیم. و اگر در جاهای دیگر آدمهای خوشخلق بی نیافتیم به همین کتابخانه برمیگردیم بر کتاب ملی را که تعطیل نمی کنند, می کنند؟ بسیار خوب گیریم که کتابخانه‌های بسیاری باز باشد و کتابدارهای خوب خوش برخورد هم وجود داشته باشند تنوع تنقلات که به تعداد هفته های عمر ما نیست عاقبت یک روز تمام می شود پناه ور خدا آیا به خاطر آنکه یک روز آب دریاها تمام می شود؟ امروز حق است که از کشتیراندن بر دریاها چشم بپوشیم بهار چند روزی می رویم روی کارون بلم میرانیم. چند روزی هم خلیج فارس را در می نوردیم قشم، کیش، ابو موسا، تنب، خارک این کارها پول می خواهد پسر جان نمی دانی؟ بی به خود شکداران، تنپرستان، آوارگان مظلوم آنها که گمان می کنند خوشبختی، همیشه در جایی دور قرار دارد و گریختن جمیع مشکلات روانی و اخلاقیشان را حل می کند خیلی خیل دارند همه چیزشان را میفروشند و میگریزند. میگریزند به جاهایی که در آنجاها تن به تکدی و فحشا و در به دری و غم قربت خواهند سپرد و به تدریج مزمهل خواهند شد من و مددی کتابخانههایشان را به شراکت می خرین. خیلی هم ارزان حقشان است کتاب مثل گلدان و مجسمه های نفرت انگیز قالبی گچی وسیله زینت اتاقهای ایشان بوده است نه وسیله کسب علم ما اگر ده کتابخانه بخریم خرج دو سالمان را در نیمی از آن را هم تازه به بچه های معلول و بی هدیه می کنیم.